میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کاروانسرا چیست؟ کاروانسرا مثل هتل‌های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها اقامت می کردند. تازه فهمیدم کاروانسرا به چه است؟ حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ بله، در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند همینطور است حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ کاروانسرای مرنجاب را در منطقه کویری می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می رفتند، در این کاروانسرا اقامت می کردند. آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ البته، آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن، مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند.